آن را که وقوف است بر احوال جهان، شادی و غم و رنج برو شد یکسان، چون نیک و بد جهان به خواهد شد، خواهی تو به درد باش و خواهی درمان. برخیز و مخور غم جهان گذران، خوشباه شدمی به شادمانی گذران، در طب جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران بشنو زمن ای زبته یاران که هن. اندیشه مکنزین پلک بی سر و بر گوشه عرصه قناعت بنشین، بازیچه چرخ را تماشا می تا تابتوانی خدمت رندان می کن، بنیاد نماز و روزه ویران می بشن و سخن راست و خیام دوست، می می خور و ره می و احسان می کن.